جانم ربا دادا فدایات مادران هر چه دارم کم لگے بادا فدایات مادران هر چه دارم کم لگے بادا فدایات مادران با ما بر دیس درد درنجاز بهر خوابی راحت من شوام قربان درد و رنج در هایت ها درم من شوام قربان درد و رنج هایت ها درم روشن از سیمای مهربان گزلق شان است باغ دلشادا به خبرم غم صفایت ها درم باغ دل شاداب آور را از صفایت ما دارم جان من بادا فدای خاک پایات ما دارم هر چه دارم جنب لگی بادا فدایت حضرا قلب من, قلب من گرمی تپد در سینہ من اس عشق توست روح من باشد شاد شبی می جن فضا یت مادرم روح من باشد شاد شبی می جن فضا یت مادرم درقبال مشکلات و حادثات روزگار در امان دار اج مراسم دعایات مادرم در امان دار اج مراسم دعایات مادرم جان من باد فدای خاک پات مادرم هر چه دارم چم لگی باد فدایات مادرم هرچی دارم جملگی بادا فدایت ما درم آه اجران تو در غور بدشرا رنگی زگرم می رود از سینه من تا خدایت ما درم می رود از سینه من تا خدایت ما درم هر کجا منزل گسینی از صف صو از کران یاس های عشق رویت ز جایات مادر یاس های عشق رویت ز جایات مادر جان من بادا فدای خاک پایات مادر هر چه دارم جون لگی باد فدایت مادرم هر چه دارم جون لگی باد فدایت مادرم مشکلات این شب دیمی مشرین و بی‌تَم از داهای شب مشکل گشایَت مادرَم از داهای شب مشکل گشایَت مادرَم این ساده شد نصیبم تاشابش خاک دات بوسه ای عشقم نسار ردپایات ما درم بوسه ای عشقم نسار ردپایات ما درم جان من بادا فدای خاک پایات ما درم هر چی دارم جون لگی بود فدایات مادرم هر چی دارم جون لگی بود فدایات مادرم کاش می شودید قربان با هزاران مشور شو می شدم هران قربانی برایات مادرم می شدم حیران قربانی برای ات مادرم جان من بعد و فدای خاک بای ات مادرم هرچی دارم جملگی بعد و فدای ات مادرم هرچی دارم جملگی بعد و فدای ات مادرم